سراو تا جوشا ایش و هشتا اوان تا سوچا مننگها ها آورناو وی چی نرم نرم و خیای تنویه پرا مز یانگ و احماین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 نیک دریابید، آگاه شوید و آگاهی دهید در اینجا در این بند پایانی به گفته قدیمی ها منو شاهدم از غیب رسید پرا مزیانگ، این پرا همون فرا هست که در دوست گرامی آمده بود که پر درسته یا فر و گونه که بار نخست گفته شد من در این کراس ها نگاه نگاهم و تلاش هم که نخست از اصول یا بنمایه ها و پای ها بگم و تعریف های پایی رو اون اندازه که نیاز است بازگویی کنم تا آروم آروم جا بیفتن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 هندو بودا اینها خب نزدیک جای بیشتری هست ولی نا هم خدایاش با دین های حساب ابراهیمی بیشتره که با نگرش به چیرگی چندین صدایی این گونه سیستم های باوری در بخش های از جهان و به ویژه کشور ما شگفت نیست ولی راست و درست کردن اون نیروی زیاد می درست مانند چرخ سنگین و بزرگی که به یک سومی چرخه و چاره نیست جز اینکه نخست می گذاشت و اون رو نیه داشت این چرخ تا بتونه سپس سمت و سو راستاشو دگر کنیم و به راه درستش بندازم این بازنموت ها یا تعریف پایه‌ای و مهم مانند خدا و دین و پیامبر از اینا آغاز میشه تا آین و سنت رو روی هم رفته فرهنگ و کل فرهنگ رو در بر میگیره که فرهنگ رو حال همجای گفتیم اصلا پایه و مایه های اجتماعی ماست فرهنگی باورها بابرها مومیم بنابراین من تلاش هم داشته از زبایای گوناگون به این بازنموت و پدیده ها و مفاهیم نگاه و گفتگو کنم تا کم کم نگاره یا تصویر بهتر رو کامل از اونا به دست مید. پروانه میخوام که در همین آغاز سپاس جرم گرم خودم رو ارمقان همه اون روشناندیشان و دانشمندان گرامی کنم که گاه به گاه از دستمایه و دسترنج دانشی اونها و گفتارها و نوشتارهاشون برای پرمایه کردن سخنان خودم بهره خواهم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 خواستن اینکه بفهمیم و درست ببینیم و داشتن چشمانی باز و روشن و جستجوگر و پژوهشگر برای دیدن و دریافتن اون. از چیم یا معنا یا معنای دیگر دین همانا وجدان آگاه هم یاد کردیم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 بازی کمی بیشتر به اون نگاه کنیم ما برای دید برون یعنی همان دیدن با چشم برون ویژه برای دیدن چشمنداز های دور میگوییم دست کم به پنج کارمایه یا به پنج چیز به پنج آمل نیاز داریم نگاهی بکنیم که این پنج تا چی هستن که ما باید اون را داشته باشیم تا بتونیم درست ببینیم با چشمان بیرون وقتی نگاه میکنه نخست هوای تمیز و پاکیزه نگفته پیداست که در هوای محالود دودالود خبارالود یا عبرالود نمیتوان تماشای چشمندازهای دور نشست پس نخستین بایستگی برای دیدن چشمندازهای دور چیست؟ هوای پاکیزه بیایم روشنایی نور ولی نه روشنایی های یا محدود چراغ بلکه روشنایی گستر خوشید دامنه روشنایی هیچ چراغی ما رو به شناخت زشتی ها و زیبایی کرانه های دور راهبرین نمیکنه ما نور بیشتر میخوایم روشنایی بیشتر میخوام. سییم؟ چشم و چشمان بینا هستن اگر هوا پاکیزه باشه و خوشید جهانتا پرتبه خود رو بر کرانه های دور زمین هم گسترده باشه ولی ما چشمان بینا نداشته باشیم از دیدن اون که پیش روی ماست بی بهره بی بهرخایی بود پس یومین باعثتگی داشتن چشمان بینا هست چهارم اراده و خ...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 و چشم دل بارها با دیدیم که چشمان ما گزارش نادرست به ما دادن و ما را به گمراهی کشوندن برای نمونه چشمان ما یک هواپیمای بزرگ رو که در فراز هزاران پایی در پرواز است به گونه‌ای به ما نشان میدن که اگر ما این هواپیما رو بر روی زمین نمیدیدیم و اندازه‌اش رو نمیدونستیم فکر کردیم که پرنده یه کوچک سپید که در آرام او احساس داره پرواز میکنه ولی ما آدم ما رو برای زمین دیدیم سوارش هم شدیم و با سر و صدای گوشخراش و شتاب شگفت هم آشناست از این رو گزارش نادرست چشمان خودمون رو بهان نمیدیم و آنچه را که با چشم سر میبینیم با دانسته های پیشین خودمون به هم میامیزیم و در میامیم که آنچه بر فراز سر ماست یک پرنده کوچک آرام و کن پرواز نیست بلکه هواپیمای قبول پیکری است که با دخاتون بار و سطح سرنشین و با شتابی نزدیک به ازهای کیلومتر در ساعت در پرواز خب حالا این،, این دیده برونمون بود که گفتیم برای دیدن درون نیز ما به همین کارمایه ها نیاز داریم پس رو این تماشاگه درون رو دعینا می نامه و کارمایه های اون رو هم به ما نشون میده تا به یارمندی و کمک اونا بتونیم شایست و ناشایست رو اصلا باز بشناسیم و درست داریم و احترام ارزش ها رو برگذیمیم گفتیم که نخستین بایستگی برای آی دیدن ششمنداز های دور چیست؟ هوای پاکیزه پس باید نخست هوای درون رو از همه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 تنها در زیر تابش خورشید خرد است که میتوان به ارزشهای والا پی برد و به سوی بیهودگی ها نرفت باز این آن چی است که زرتشت بزرگ در زبان گاتایی ده نامیده و در پارسی امروز به پیکر دین در است در میدان این دین هیچ فرمانی جز فرمان خرد پذیرافتنی نیست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 آه. کتاب ها و نوشته های کهان ما از اونها که ما به ادبیات ابستایی مینامیم که بر رای هم رفته ای از آزمون ها و تجربه ها و فراگره های پیشینیان ما هستند که بازنمود زیبایی دیگری هم از دین دارند برابر ها دین یا بهتر بگیم دین خوب مانند یک بانوی زیبای جوان است و در برابر دین بد مانند یک انسان زشت رو و زشت خوب این بدان مفهومه که دین خوب چیزی است زیبا که انسان رو هم زیبا میکنه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 خب این هم یک بازنمودی که از ابستا هست. اکنون اگر این دو بازنمود رو در کنار هم بگذاریم شاید بتونیم بفهمیم که یک از دیدگاه جامویدی ما یک دیندار خوب کسی است که دارای دید درونی یا